خدا خداوند جام و خیرد گلیم برسرم بیشه برمک سرم خبال سمی سلام ارزم کنم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه فرهنگ رادیو برنامه که میشنوید پنجره های روبه محتاب هست من حمید رضا هدایتی راد هستم و عزیز عزیزمان آقای دکتر فیدون جنیدی هستم سلام شب شما بخیل درود روزگار شما خوش ماه قشنگی هم داشتیم <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ماغاز میشه به در حقیقت ویشفتت مانگ ما به از بابت چگونگی نوریش در ایران و بوستون سه بخش شده یکی انتره مانگ هست انطر همونی که بعدا در فاس اندر و در انگلیسی شد اینتر در فرانسه شد آن در آلمانی شد اوندر این اینا همه همون انتره یعنی انتره ما یکی شد اندر. اندر ماه رو هم رفته. یعنی وقتی که ماه وارد میشه. و تا شب هفتم طول میکشه. از شب هفتم که درست نیم نیمتایرش شروع میکنه به اضافه این نامش بوده پریمانگه. یعنی ماه پر. تا شب بیستی اکم. از شب بیستی م تا شب بیستی اکم ویشفتت مانک بود این نام کسی متوجه نشده ویشفتت یعنی دور از شب ویشفتت ویشفتت مانک یعنی ماه دور از شب میدینیم برای که در روز دیده میشه مرتباً به طرف روز کشیده میشه و ما امشب در ویشفتت مانگ هستیم که کم کم روز دیده میشه و تا اینکه روز بیست هشتم دیگه دیده علیش میاد. البته شبو میتونن الان ببینن تا به مرور بله. که دیر بخوام بخوام اگر زود بخوام بخوام ماجرا نمیشه. راستشو بگم من دیشب خیلی قشنگ دیدم. خیلی آه. قشنگ اومده بود این که این ساختمون که اینور طرحش هستش اونجا. نه خب شخص شما نمیاد شما کنار ساختمون بودین ما رو را... نه... کنار ساختمون بودین ترکی رو <تصفح> <تصفح> <تصفح> آره من با اجزای دیگه به تنهایی نمیبینم حالا بله. تو شهر وسط جاهای مختلف شهر میبینم خیلی لذت میبینم می که حالا مردمم یعنی این ساختمون ها رو کنارم رو میبینم میگم که چرا مردم مثلا دقت نمی کردن بعضی از مردم و پنجره با رو باز کنن ببینن مر... حالا همین که خود شما این موضوعی که کردید خودش سرآغازه. می‌ذارم که جوانان بی‌ذول ایران توجه بکنن به دغدغه خداوند. من نمره 20 بگیرم. من نمره 20 بگیرم. من. <تصح> <تصح> ما امشب در ب... من در مورد این یه بیتی که شما خواندید در آغاز می‌خواستم بپرسم در مورد معنیش در مورد اگر راه راز و رمزی داره برای ما بفرمایید. این در این شفت فردوسی می که کسی که خراب داشته باشه روان رو با دانش باید تربارش کده برای که روان که مدل روح هست در زبانهای دیگه این یه چیز مجرده مثلا یه بچه پنج ساله هم روان داره یه مرد پنج سال هفته سال هم روان داره با هم فرق نمیکنه. دل اما در اینجا فردوسی میگه که روان انسانی با پخترت پرورش پیدا کنه. ما دانش پرورش پیدا می‌کنه. مراتباً باید دانش خودتون رو بی افساید تا روان پروریش بدونه. تا روح و روانتون باعث روان پرورش پیدا بکنه. اینطور نیست که روان یک انسان 70 ساله با بچه 2 ساله یکی باشه. در حالی که در همه فرهنگ‌های جهان اینجوری تصور می‌کنه. فکر می‌کنه که خب این بچه 2 ساله هم روان داره یعنی روح داره. مرد 85 ساله هم روح داره. یه دانشمند بزرگی مثل فردوسی هم روح داره یه بچه شی هم روح داره و هر دوی اینا با هم برابره همه فرهنگ های جوان همینه میگن به جز فرهنگ ایران که در این گفتار فردوسی منتجلی شده که با دانش روان خودتون رو بپربرید و یک گفتاری از فردوسی هست که از هش موردیست که فردوسی خودش به شما نفس بوده می که همین خواهم از داوری یه خدای که چندان بگیتی بمانم به پای که این نامه شهریاران پیش در آرام بدین خوب گفتار خیش و از آن پس تن بیهنر خاک راست روان و توان مینوه پاک راست روان که خوب مشخص شد روانی که پرورش پیدا کرده این همراه با توانه توان اون چیزی که امروز رو هم میگن انرژی یعنی این در حقیقت نیروی عظیمی که با 14 میلیارد دفرون مغز ما همراه هست این خوایان پذیر نیست مرک پذیر نیست چون شما شدیدی که انرژی در جهان از میان نمیره انرژی باقی میمونه بنابراین اون توان عظیمی که با ما هست و در مغز ما هست همراه با روان ما اگر پربره ششتاده باشیم اون وقت میمونه در جهان مینو یعنی جهان معنوی وزان پستن بیهنر هنر خاک راست، روان و توان، مینوی پاک راست. در حقیقت ما باید روان خودمون رو با دانش بپرورانیم تا به توان ما بیفضایی یعنی توان این چیزی که میگن انرژی، انرژی مغز ما بپیبنده و در جهان مینوی بماند، پایدار. این تفسیر این بیت پگزارم از شما با تلفن های دیویستو... قبل از اینکه تلفن رو کنم، ما دفتر دوم روی دیویستو یا همون صفحه شصت رو از شاهنامه فردوسی یه شده توسط آقای دکتر فرونی رو میخوایم امشب که ادامه داستان داستان پادشاهی کیخسرو هست است. بفرمایید ویرایششیرش یرایش هایی دکتردون جنودی. تلفن های برنامه دو۲ چهصد 85 دو و 2020، چهصد 85 دو و 2020، 5 و88 دو صفر دو و 2020، دو صفر. و شماره پیامک سی هزار و, و, سی هزار و, و ای هم خدمتون بدم به همین زودی انشاءالله به امید خدا به سیدی های برنامه در اختیار شما قرار میگیره در حالا مراکزی که اعلام خواهد شد کل برنامه های پنجره های روبه و انشاءالله در اختیارتون خواهد بود با امید خدا پایگای تلارسانی امام www.radiofahang.ir و شما میتونید از طریق محبار عیزان که خارج از کشور هستن در اقوام دوستان آشنایان بفرمیند که از طریق محبار هات برد میتونن اون بخش رادیو ها بگردن و رادیو فرهنگ اونجا هستش میتونن اینجا به سلا برنامه های ما رو بشنون و برنامه کل شبکه و همطور برنامه ما رو بشنون ما پس ادامه داستان پادشاهی کیخسرو رو خواهیم داشت یه سؤالم من دارم که هم هفته پیش شما اشاره فرمودید دوران که این خواهی بوده این دوران بله بله با همه این که دوران درشوانی بوده تصفانه مرتبا به فرمان که خسرو سپاه ایران از مرز خارج می شود در مواقع دیگه دیگران میمدن می و مطبع در هنگام که خسرو همواره از مرز می و سرمایه اون نواحی شمالی سپاهیان ما رو ناتوان می کرد و کشتارها و از میان رفتن مردمان بیشمال در این دوران ما داریم حالا این البته نقصتی که آغاز شده و سر جاه سپاه ایران فرود قرار میگیره که هفته پیش اندکی درباره سبا کردیم که زر عصب رو میکشه و توس از اسب زمین میکرده اسبش عصبش میمیره و بر میگرده دنباله این داستان رو امشب پیگیری کنیم. فرود با ایرانیان و کشه شدن فرود چه خورشید تابنده بینمون چه خرامان برآمد به خم سپر خم سپر یعنی در حقیقت نیم دایرهی که بین آسمون و زمین در حقیقت دیده میشه افق افق و خوشید از پشت کوه اومده چهرش و به خمسه په رسیده و اون نیم دایره رسیده در افق. زهر سو برآمد خروش سران گراییدن گرزهای گران. قبع کوس با ناله کرنای قبع یعنی قده بانک. دم نای سرقین و هندی درای. به گرد سواران و از گرز و تیر سر کوه شد هم شد دریای غیر. نبود هیچ حامون و جای نبرد. همین کوه و سنگ اسب رو خیره کرد. خیره یعنی بیهوده. اسب نمیتونه سرگر بکنه. سر کوه. از این گونه تا گشت خورشید راست سپاه فرود دلاور بکست. خورشید راست شد یعنی رسیدیم به نیم روز. خرشید بالا آسماگر را اینان را به پیچید و تنها برفت زباله سوی دشت خرامی تفت. یک بیت از شانمها فروض داده که اینشون میده که که این کار را کرده. فروض جوان ترگی بیجن بدید بزد دست و تیغ از میان برکشید تو را خامو گردند درآمد آمد به پشت خروشان یکی تیغ هندی به مشت بزد بر سره کتف مرد دلیر فرود آمد از دوش دستش بزیر. همکاری روحام که بلوچستان و پشتونستان باشه. با بیژن که بزنورد باشه. و اینها از پشت کوه اومدن یعنی از کوه اومدن بالا و دش فرود رو میگیرن. این همکاری رو من در داستان ایران شهر دادم. چه از به جدا گشت بازوی و دوش همی تاخت اسب و زد خروش. به در شد و در ببستند زود شدن نامور. شیر جنگی پرود. بشد با پرستندگان مادرش گرفتند پوشیدگان در برش چون این گفت چون لب بر برگرفت که این مویه کردن نباشد چه گفت. کنون اندر آیند ایرانیان به تاراج دج پاک بسته میان فرود از فرهنگ ایرانی آگاهی نداشت و نمیدونست که ایرانیان تاراج نمی کنند. در هیچ کدوم از جنگ ها ایرانیان چین نکردند. کنون اندر ایرانیان به تاراج دج پاک بسته میان پرستندگان را از ایران کنند، دج و باره و کوه ایران کنند. دلی هر که بر من بسوزد همین، زجانم روخش برپروزد همین، میبونید چه اشاره های زیباییست؟ یعنی کسانی که منو میبینن، وقتی که من میبینن روخشون فروزان میشه، سرخ میشه، درخشان میشه، از دیدارو من شادمان میشم. اینها شیبه گفتار است که به هیچ روی در گفتار هیچ کس در جهان خمانند نداره. دل هر که بر من به صورت حمید روخش بر صورت حمید همه پاک بر باید شدن وندن تن خیش بر زمین بر زدند یه باله دیوار وردهش و خودتون پرت کنید رو سنگ کرد برای شما رو نگیرند به گفتین و رخسارها گشت زرد و روانش به تیمار و درد. پرستندگان بر سر دشت شدند، همه خیش را بر زمین برزدند. رخ توس و پرز خونه ز درد پرود از بحر پسر. این بیت فردوسی نشون میده که اینجا فقط دو کس مرد، مردم، یکی فرود، یکی زرست پسر بود. در حال که افزاندگان چند پهلوان رو کشوندن به این ماجرا از جمله ریبنی رو چند پهلوان دیگه اونو با یکی، یکی کشش شدن. نه چنین نیست، فقط فرود کشش شد و زرست که در این بیت خودشونشون میگه. روخه تو شد پردخونه جگر درد فرود و زبهر پسر سفه برگرفت و پزات ناوی کوس زمین کوه تا کوه گشت و روز. یک داستان طولانی دراز و هفتود که رزم پلاشان با توس که پلاشان معنی نداره در فرهنگ ایرانی هستم هیچ م. معنی نداره از این کارا هفتندگان زیاد کردن مثلا فرض کنید که نام ساختن برای یک نفر اخواست اخواست نخواسته خب وقتی که یک مثلا ف کنیم برای یه خانواده ای چند تا دختر می اوومد اون آخری رو نام آخری رو می مثلا الان هنوزم در لورستان وقتی روی ها هست که دختر بس ح من یه نامشندم خانم بس یعنی این دختر خااننمایی که به مدی خود بس بس هم یع یعنی این دیگه بعد از این پسر باشه نه اینکه وقتی یه پسر ب او به اسم میشه روز اخواست یعنی نخواسته چنین چیزی نیست مادر نه ماه آربردار است. و معلوم که این بچه خواهد بود دیگه خب در خانواده پهلوانان چه بهتر که بچه پسر بشه, بشه که بشه بتونه بردن جنگ بشه چطور اخواش زنگوله کوه گوش بو سپاس از این نام ها افتاندگان همطور به شاهنامه افزودن سپاسی از آن رو درود به روان بلند, بلند پایگاه فردوسی که چندان گفتار او و ارزش کار او در نزد ایرانیان بلند بود که با همه این افزوده های ناخوش ناخوش باز شاهنامه برترین پایگاه و جایگاه رو در نزد ایرانیان داره خب دنباله سخن سفن. بازان پس خبر شد به افراسیاب که شد مرز توگراند چو دریای آب. سوی کاس رود اندر آمد سپاه زمین شد زکین سیاه باش سیاه بخش حضور که افسوده ای که در اینجا هست که نه تمام افسوده هاست که سالان ما مهمشو برای شما ارز میکنم اینجا میگن که خی خسرو برای اینکه یعنی از توی توران ستمی نواشه فرمان داد که یک دیوار خیلی بلند از هیزم و چوب بین ایران و توران بکشن بریزن چوب بریزن این افزنده فکر نگیرد که خب اگه دیواری که از چوب و هیزم باشه کافیست که یک قسمت کچک شد آتیش بزنن این هم افزنده که شما میدید من ورغ زدم این داستانهای است که بشونم افزنده سپهدار پیران پس از من عبیات یعنی رجه های پیرسته به هم رو بخونم که خودتون ببینید و داوری کنید که این هم چقدر سپاه از آن پس خبر شد به افراسی ها که شد مرز توران شد در یای آب سوی کاس رودندر آمد سپاه زمین شد زکین سیاهوش سیاه. سپهدار و پیران همان بر شتاب برون آمد از پیش افراسیاب. میبینید خبر رسیده و سفهدار و پیران بی اومد بیرون. برای چی؟ جهان شد پر از ناله کرنای، ز قریدن کورس و هندی درهای هوا، سر سر سرخ و زرد و بنفش، زبست نیزه و گونه گونه درفش. بفرمود پیران که بیره روید، از ای در سوی راه کوته روید. نباید که بند خود آگهی از این نامداران بافر رهی. مگر ناگهان بر سر اون گروه فرو دارم این گهشن لشکر چکوه. به پیوست گفتار کاراگهان خب همیشه به یک سازمانی بوده در دربار شاهان که از کارها آگاه می شدن و خبر میدادند به پادشاه. به پیوست گفتار یعنی از اخبار آگاهی پیدا کردن و رسوندن به پیران. به پیوست گفتار کاراگاهان به پیران بگفتند یکی یک نهان که ایشان همه میکوس ها رند و مست شب و روز با جام پر پرمی به دست. یک ندرستی کار اون زمان بوده که وقتی که اومدن به خاک توران و جنگ نشده آغاز کردن به شادمانی و مینوشیم. چو بشنید پیران یلان را بخواند ز لشکر فراوان سخونها براند که در رزم ما را چنین دستگاه نبوده است هرگز بر ایران سپاه یعنی اینا مشغول شادمانی و مستی هستند و ما میتونیم که شبیه خون بزنیم گزین کهرد زان نامدار سواران شمشیر زن سی هزار ازنجایگه سوی ایران سپاه برفتند برسام گرد سیاه همه مست بودند ایرانیان گروهی نشسته گشاده میان یعنی کمر جنگشون رو باز کرده بودند خروش آمد از بانگ زخمه تبر سراسیمه شد دیوه پرخاش خر بی آمد به پای به کردار و در آمد جای به پرد سرای سپه رسید رسید زگرد و شب آسمان تیره دید به دو گفت برخیز کامت سپاه به خوابندرند این دله رانه شاه ازان جایگه رفت نزد پدر یعنی به توس گفت حالا پدر که گودرز باشه ازان جایگه رفت نزد پدر به چنگندرون گزهٔ سر همی گشت بر گرد لشکر چو دود برانگیخت آن را که بود سفیده چود برزد سر از برج شیر برج شیر یعنی امرداد ما کرمیم احسد یعنی برد برد سفیده چود برزد سر از برج شیر بلشگر نگه کرد گیبت دلیر طرف شو نگونسا و نگونسار. کوس روخ زندگان تیره چون آب نوست. از این گونه لشکر سوی کاسرود برفتن بیمایه و تار و پود. نبود کس برزمندرون پایدار. همه کوه کردند گردان حسار. فرو مانده پان و مردان جنگ. یکی را نبود. هوش و توش و درنگ. هوش که معلومه توش، خوراکه که با توش توان میاد یعنی با توان با خوردن توش توان به دست میاد در اینجا میگه که نه هوش داشتن نه توش داشتن نه میتونستن درنگ بکنن میگوریشتن سپه بز پیکار دیوانه گشت دلش باخرت همچون بیگانه گشت یعنی توس نه آن خستگان را خورش نه پزشک همه جای قم بودو خونین سرشک جهان دیدگان پیش اوی آمدند شکست دل و راه آمدند یکی دیدبان بر سر کوه کرد کجا دیده را سوی انبوه کرد یعنی یک دیدبان سر کوه گذاشتند که نگاه بکنه به انبوه تورانیان تلایه فرستاد بر هر سوی مگر یابدان درد را دارویی یکی نامداری از ایرانیان بفرمود تا تنگ بندد میان به هد شاه را آگهی زین سخن که سالار لشکر چه افتند بن رونده بر شاه برد آگهی که تیره شدان روزگار بهی که شاه دلهران سخونها شنید بجوشید و از غم دلش بردمید زبان کرد گویاب به نفرین توس شب تیره تا گاه بانگ خروس دو برای ما شاهنامه میخوانند داستان های شاهنامه رو میخوانند رمزی گوشایی میکنند و در مورد واجه ها صحبت میکنند مطالبی رو که بارها و بارها ما در این برنامه یا از قبل شنیدیم اما باز هم شما سوال میکنید و ایشان باز هم با لطفی که دارند برنامه و شما رو خیلی دوست دارند شنونده های عزیز خلاصه اینجوری هست که دارم میگم میفرمیند که بپرسید که من پاسخ بدم بعضی این سوال ها تکراری هست بعضی از دوستان میدونن اگه میدونید به همدیگه بگید اما ما اینجا تو برنامه باز هم میگیم. با سلام با آقای آیا آریایی ها از اروپا به ایران آمدند؟ با تشکر آقای بارگاهی هستم از استان بوشهر تو روز به دریای فارس مردم بوشهر این در حقیقت دروغی که اروپایی ها پس از دریافت عظمت فرهنگ ایران در این سبه های اخیر بشیرسیدند یه دروغی ساختم که آریاییان از یه جایی دیگه به اینجا آمدند و اینا گافچران و وحشی بودند اومدن جای تمدن و فرهنگ خیلی بزرگی خوبی بود به نام که آسیاتیک اونا رو از بین بردن همه رو و نام خودشونو گذاشتن. یعنی ایران خب این دروبیش که اروپایی ها برای ما ساختن تا ما رو به این وسیله به بس بکوبند و کوچک کنند و متاسفانه دانشگاه های ما هم بدون بول همین دروغ میره در جهان حرکات بسیار انجام شده که مجرب جنگ ها شده هر کدوم از این جنگ ها معلوم هست که کسانی که اومدند به کشور رو بیران کردند از کجا آمدند مثلا مغول معلومی که اومد از معلومه آلمانیستون اومده یا فیلیپس مقدونی از مقدونیه اومد معلومه بعدها اعراب اومدن معلومه قوزون دیگه چاتورها اینا همه معلوم هست که از کجا اومدن و در اینجا جنگ کردن و بازگشتن یا مقدارشون باقی موندن این فقط ایرانیان است که معلومه چوشو کجا بوده بعضیا میگن سیبری بوده بعضی کنار بولگا بوده بعضی کنار دانوب بوده یه در حقیقت برخاسته کودکانه چون دانوب یعنی آان یعنی رود, رود،, رود، آب به زبان سکایی و ایرانی این نام ایرانیه اونا میگن چون این دانوب نام پس این سکاییان از اینجا رفتن نه چنین نیست برای که تمام مدارک ایرانی نشون میده که اینجا از آغاز میهن و خاک و گهواره پرارج ما ایرانیان بوده و بعد بر اثر یک گرمای بسیار دامنداری که در ایران رخ داد و دلیل در حقیق زمین حیناسیش وجود داره در کتاب داستان ایران خواهم گفت ایرانیان شروع کردن به مهاجرت به طرف اول به طرف قرب یعنی اروپا و بعد به طرف شرق یعنی آسیای میانیم این نام هایی که اینا دارن یکی که خودش نشون میده که اینها ایرانی هستن مثلا بست که فرانسه گل گل گیله یا فرض کنم که انگلیس آنگلو ساکسون آنگلو بخشی آمیزه ای از گیل هستن با ساکسون های یعنی سکایا یا مثلا فرض کنم که پرتغال پارته یا اسپانیا سپاهانی هستن اینا من در یک سال پیش اینا رو نوشتم من به خصوص بار اسپانیا نوشتم باید این طور باشه بعد از سالها یکی از دوستان من،, من به من تلفون زد کتابی رو که من خودم خونده بودم از ابن خرداد به، جغرافی ابن خرداد به که خونده بودم ولی این, این جمله رو ندیده بودم اون به من که در کتاب ابن خرداد به هست که یک سرداری از سپاهان اومده در اسپانیا و در اونجا اقامت کرده با افراد ایلش و اسپانیا نام گرفته اینجا و همین دلیلی که شما بینید که بعد از اسلام وقتی که یکی از موسیقیدانان بزرگ ایران که از شاگرد موسیلیان بود و رفت به اسپانیا اونجا پذیرفته شد خیلی زود این رو خواستن برای که این اسمش بود زریاب برای که زریاب چیزی رو میزد که اونها نیاکانشون همونا رو زده بودن و شنیده بودن و همون موسیقی رو میخواستن جالبینه که اروپا یا زریاب رو میگن که مثلا عرب بود در حالی که می نامش زریاب فارسیه این شاگرد موسیان بود موسلیان تو برادر موسیقیدان بودندن که متاسفانه نام عربی به خودشون گرفتن و رفتن دربار بار خلافت برای اونا مطرب شدن اما اینا موسی دان دانان بزرگی بودن از اونا کتابی باقی موند که بعدا از وین رفته که الهان و این نوشته ها اینا رو این آهنکار رو در اون کتاب زرد کردند و خود همین نشون میده که نوت بوده خط موسیقی در ایران بوده که این موسیقیان تونستن این کتاب رو بنیسن در اصلا زریاب که وزینا به قهر رفت به از شمال آفریقا رفت به طرف اسپانیا مورد استقبال قرار گرفت، برای که اونها این موسیقی رو میزد که اونها میخواستن و بعد این در حققت در این سالها پس از اسلام در شیوه میماری و ساخت و ساز و زندگی اسپانی های یا خیلی ما همانندی ها میبینیم با ایران این رو البته من سی سال پیش نوشتم که گمان،, گمان من بلینه که اینا و سپاهانی باشن ولی خوب ابن خرداد به هزار و هندی سال پیش گفته اینا روشن گفته اینا اسپانی هستن بنابراین یکی یکی این کشورهایی که در اروپا هستند و نامهایی که دارند اگر بشکافیم اینا همه نام های است و نشاندهنده تیره های ایرانی هستش که رفتن به اونجا نه اینکه از اونجا به اینجا آمده باشن اسم... اروپا تاریخی نداره که حد اکثر تاریخ اروپا دوزاره سال تشکیل یونان وقتی که ما یک مقطع چهارده هزار ساله در تاریخ خودمون پیدا میکنیم که بروز سرمای دوران جمشیدی که زمین سیناسا امروز به اون میگن ورم 4 این تاریخ اروپا خیلی حقیر و ناچیز میشه در برابر تاریخ ایران شما مطمئن باشید که نیاکانتون اینجا بودن مطمئن باشید که این خاک گهواره ماست و گور ماست مطمئن باشید که این خاک خاک نیاکان بزرگ پایگاه بلند پایگاه ما هستن و از هیچ جا نیمدیم هر چمک که بوده ما دادیم به جهانیان با سلام بدرود بر استاد جانئی دی <تصفح> نظر استاد درباره کتاب چهار مقاله عروضی چیست؟ قسمت شاعری و داستان‌هایی که درباره فردوسی نوشته است، این رو به فرمیده آیا تا حدی سنتالخونه؟ درود بر شما چهار مقاله عروضی سمرقندی یک کتاب خیلی خوبی است که مثلا خیلی خیلی خوب داره منتهای داستانی که درباره فردوسی گفته او هم داستانی که بر حقیقت معموران و در نویسندگان دروخ دوران قضنبی ساختند که در اونجا هم همینطور میبینیم که بیان شده که فردوسی برای سلی محمود فرمایه خواست شانامه رو بگه من بارها اینو گفتم باز میگم شاهنامه در سال 400 هجری به پایان رسید یعنی در سال 370 آغاز شده در سال 370 محمود یک کدک 11 ساله بود چطور این دروغ ها رو میشه باور کرد؟ چرا این کسانی که نامشون استاد هست همین یک تاریخ رو معین نکردن. تا بفهمن که خیر اینا همه دروغ پردازی های دستگاه است. اما من از چهار مقاله ارزی که یک پیت درست رو پیدا کردم که در هیچ کدوم از نمونه های دیگه شانومه نبود و اون رو در بیراش خودم آوردم وقتی که بخونن متوجه میشن من زیر نویسم دادم درود بر استاد ایران دوست جنیدی عزیز و مجریه بی هدایتی ادایتی لطفا از حسین و معنی آن و کوهی در آنجا به نام دیوانگی مختصری بیان فرمایید به درود برزو رستنپور درود بر نام فامیلی تو که برزوی رستنپور هستی من یک گفتاری نوشتم تقریباً 20 سال پیش به نام در نام کرمان و پیامون دو هزار نام ایرانی رو بررسی کردم و بعد از شاهنما و عوستا و موتون پهلوی در پایان نشون داده شد که کرمان که ظاهرا به کرم منتصب هست در حقیقت میهن کوهستانی شما اگر اون کتاب رو بخونید این پیسفند ها و پسفند ها مثل همین سین و سان و شان و اینا رو میتونید پیدا کنید خب خود شان پسفند جارگاه که در لوشان و در بدخشان و در کاشان و اینها می بینید بدخشان اون سوی مرز امروزی سیاسی ولی در حقیقت در شرق ایران و بزرگ بوده این شان تبدیل به سان میشه مثل مثلا در لواسان و رواسان تبریز چون کنار نزدیکی زی کتابریز رواسان داریم این سان خیلی ساده طبق قوانین زبان شناسی میتونه تبدیل به سین بشه ما پیشوندها رو بعضی از این پیشوندها رو نمیتونیم داوری شتابزده دربارش بکنیم کما <تصفح> اینکه مثلا در واژه یک بار دیگه هم گفتم اینا تکرار میشه ما یک شهری داریم به نام مرکند در همون از گیس سمرقند یه شهرم داشتیم یعنی روستای بزرگی داشتیم در جایی که امروز سلیمانی نامیده میشه در کردستان غربی این اسمش بود مرکندو مرکند و مرکندو این نشون میده که خب این سمرکند هم همین, همین نامه مدتا با یه پیشوند سه این سه از بس کتاب شده معنیش نمیتونیم پیدا بکنیم ولی این سین پایان هر سین قطعا تردیدی نیست که پسند جایگاه هست من رفتم توی نام هر سین حالا این دوین هم در تاریخ ابن اسفندیار دو در هیچ از فرهنگای ایرانی نیماده. در تاریخ ابن اسفندیار دوبار از دوین یاد شده و طوری گفته که ما میتونیم بفهمیم که دووین یعنی کوه بلندی. از جمله این جمله رو گفته که همه ساله اساب خورشید برای شکار و شراب به زیرتر دوینی رفتی که کاخ اصبابت فررخان بود این نشون میده که زیرتر دوین یعنی پایین کوه بوده که بالاش کاخ اصبابت فروخان بوده خب این دوین با تبدیل با افتادن نون ازش تبدیل به دیو میشه که همه در هم باره دیوان و مازندران بحث فراوان کردیم و دیگه کاملا شاهد شدیم که بله یعنی, یعنی کوه و با افتادن و تبدیل میشه به دین که اکنون در تبرستان و گیلان بسیاری از رستاها هست که با نام دین از اونا یاد میشه و همه همین کنار یکی از این تپاهای دیوان ورید هست مثلا مثلا فرض کن که دین الان من بیاد ندارم فرض کن که دین فرخار مثلا اون روستایی که نزدیک اونجا بود فرخار بوده این میشه دین فرخار یعنی بلندی کنار فرخار هست نام رو همینطوری من گفتم ها بله بل. خب این اون نامم که در کنگاور هست از همین ریشه گرفته دوین یعنی کوه بله خب ادامه داستان رو بفرمایید تبیری خرد آمد رو پیش خواند یعنی ام... که خسرو پاس از شنیدن این خبر ناخوشایند شکست ایران تبیری خرد من رو پیش خواند دلاخنده و دشت غم برپشند به نام خداوند خورشید و ماه کجا داد بر نیکوی دستگاه از اوی از پیروزی و زو شکیب به نیکو به بد زو رسد کام و زیب زرخشند خورشید تا تیر خاک همه داد بینمزه از دان پاک چون این نام خانی همان در شتاب دل دور کن خورد و آرام و خواب سبک توس را گردان به ز فرمان مگر و مزن هیچ رای سپهدار و سالار زرین کفش تو میباش با کافیانی درفش یعنی برای نخستین بار درفش کافیان رو از یعنی خوراستانیان میگیرن میدن به فریبورز یعنی باشندگان گوه هل اینا فرزندان کاووس بودن که در در داستان عمو که خسرو به شمال میان ولی خب شما وقتی که کاووس پایتختش قزوین باشه، کاسبین، کاسپین این که خیلی پیوند پیدا میکنه کوههایی که نزدیک قزوین هست با کوههایی که البرز هست. اینا از یک نشودن یعنی اینا فرزندونه اصلا این سلسله جباله که مردمونش خواستارش کردن به طرف شرق بله، سپهدار و سالار زرین کفش تو میباش با کاویانی درفش، سرف رازگو درز از آن انجامن به هر کار باشد تو را رای زن. مکن هیچ در جنگ جستن شتا، زمه ای دور باشو، من پیمای خواب، نهادن تو را پیش رو گیف باشد به جنگ که با فر رو برز از تو زور پلنگ، گیف نژاد لرستان و نهادند نهادند برنامه بر مهر شاه فرستاده را گفت مرکش براخ. بیامد آمد فرستاده هم زین نشان به نزدیک آن سرکشان. شبهر خاند آن نامه شهریار جهان را درختی نو آمد بار. بزرگان و شیران ایران زمین همه شاه را خاندند آفلیم. بیاورد توسان گرامی درفش در اواکوس و پیلان و زرین به نزد فریبورز بردند و گفت که آمد سزا را سزاوار جفت. یعنی این درفش کابیان رو الان من به کسی می که سزاوار همون هست. یعنی سرکشی نکرد. یعنی خودش دانست که در این جنگ اشتباه کرده و حق هست که دارم درفش کابیان رو از او می گیرم. همه ساله بخت تو پیروز باد، همه روزگار تو نوروز باد. به نزدیک شاه آمد از دشت جنگ، دره نکرد هیچ ایچ کونه درنگ، زمین را ببوسید، در پیش شاه نگرد، نکرد هیچ خسرو به در نگاه، به دشنون بکشاد لب شهر یار، برای انجمن توش را کرد خار. از آن پس به دو گفت که بد نشان که گم باد نامت کردن که شان نترسی همین از جهاندار پاک زگردان نه تو را شرم و باک ترا جایه نیست در شهارستان. و تو ترا بند و بیمارستان. من یک بار دیگه هم در این مورد گفتم. بیمارستان در پهله بود بیمار ویمار بوده. مار یعنی خانه. ویمار یعنی دور از خانه. این کسانی که دیوانه بودند، اونا رو دور از شهر و خانه، بیرون از شهری جوگاهی به بند و زنجیر میکشیدند. امروز بیمارستان شد، جوگاه کسانی که مریض هم هستند، همه نمی‌دونند ناخوش استند. اما نه بیمارستان در اصل به معنی دیوانه خانه بوده. و همین بیت فدوسیم هم خوب نشدم در اصل. معنیش هم نشدم. وی ماری، یعنی دور از خانه. چیزهایی که با وی شروع میشن، وی نشانه جدایی و دوریه. مثل مثلا ویترتن که شده گذردن یعنی از این سو, سو به اون طرف ویترت یعنی جدا شد دور شد رفت اون طرف و بیمار یعنی دور از خانه دور از شهر دور از خانه این بیت خیلی گواه تو ترا جایه نیست در شهرستان به زیبت ترا بند و بیمارستان و در بیمارستان بیمارای که خیلی بد بودن و دیوانه بودن یا همه رو می دستن. که به خودشون یا به دیگران آزار رو نرسونن یا منوی زنجیری با قول مهدون زنجیری بهشون بفتن باید همینه نجاد منوچه رو ریش سپید ترا داد بر زندگانی اموی و به بفرمودمی تا سرت بدندیش کرده کدا از برد بدندیش یعنی کسانی که دوشخیم بودن در دستگاه پادشاهان خواهی نخواهی بودن دیگه و می گفتم که جلاد سرتو ببورد فری برزبین هاد بر سر کلاه که هم پهلوان بود و هم پور شاه. از آن پس بفرمود روحام را که پیدا کند با گوهر نام را یعنی با چنان گوهر نجادی که داره روحام نماد بروچستانه با پشتونستانه اینا نجاتشون به گودرز میخوره و گودرز هم همطور که گفتم کشواد و باید کارن و باید اه، کابه آهانگر. اینا فرزندان کابه بودن در حیات. میگه که با این نژادی که داری نام خودتم همطور ببرمه بنا. بدو گفت رو پیش پیران خرام زمن نزد آن پهلوان بر پیام. به گویش کردار گردان سپر همیشه چنین بود پر درد و مرگ، گه درد هست، گه گه هست. یکی را براورد به چرخ بلند، یکی را کند زار و خار و نجند. شبیخون نسازند کن داوران من پیشتر در این باره گفتم در برنامه پیشین که ایرانیان هیچگاه شبیخون نمی و پیران اینجا شبیخون کرد. چون که ایرانیان خواب رو ای داده خداوند میدونستند. در یسنا ما یه بند داریم که خواب آرامش بخش مزداداده را می ستاییم. ببینید؟ یعنی این چیزی که خداوند برای آرامش مردمان و دا... حتی جانباران داده اون آرامش بخشی رو که خداوند به ما بخشیده ما او رو ستایش می‌کنیم. بنابراین هیچگاه شبخون نمی‌کردن گفتن ما اگر شب شبیخون کنیم مخاوبیدان در حقیقت اون دهش خداوند به اونا رو ما بهش سپردیم به دهش خداوند سپردیم یعنی در سرکشی از فرمان خداوند کردیم هیچگاه ایرانیان شبیخون نکردن مگر یک بار که ارد... اردشیر اردشیر باکان در داستانی که ساختگی هم هست در اونجا بینیم که اردشیر شبخون می‌کنه ولی اونم ساختگی است. در حال که تورانیان اینا شبیه خون میکرده شما چیزی بخواستیم برسیم؟ بخواستم این پیران این کار کرد کردی که در اون که اینا به زیر سر مست بالین گرم زبر خشت خشتو تو کوپال و شمشیر گرم دو, دو صفحه با هم, با هم برخ خورد من اونا رو نخوندم بل بل. اینجا بل. این اومده که بل. به زیر سر مست بالین نرم زبر تیغ و کوپال و شمشیر گرم. راش تو کوپوله شم خوردم. اونم دارین آغامه رو زدم مست بودم. خمره زدم زادن... که ك... گوریختن دیگه. بالاخره دیگه بوشون گُروختن. تو دو... تو سفارو من با هم زده بودم نخوردن. این خوش این بیت است.